بسم الله الرحمن الرحیم المعربات یکی از درسهای بسیار مهم و جالب این کتاب من قسمت المعربات هست چون هر رو تا اینجا خونده این با عدبیاتی دیگر به خوبی به طلب ابتدایی میفهمنن قال المعربات و قسمت معرباتی که تا اینجا خوندیم بردولو هستن معرباتی که خوندیم بر هستن قسم نیو عرب و بالحرکاتی قسمی که با حرکت اعراب می شوند و قسم نیو عرب و بالحروف و اون قسمی که با حرف اعراب می شوند خب ما تا اینجا اسم مفرد رو خوندیم جمع مکسر رو خوندیم جمع محنس سالم رو خوندیم فعل مزاری که به آخرش چیزی نچسبیده بود رو خوندیم مسننا رو خوندیم جمع مذکر سالم رو خوندیم اسمهای خمسه رو خوندیم افعال خمسه رو خوندیم این میشن هشت نو اینا رو در بحث اعراب خوندیم چند هستن؟ این حشنو همشون با حرکت اعراب نمیشن، بعضی از اینا با حرکت اعراب میشن، مانند جا زیدون و بعضی با حرف اعراب میشند مانند جا ابوکه در جا زیدون میگیم زیدون فائل مرفوع با زم در جا ابوکه میگیم ابو فائل مرفوع با و زید با حرکت اعراب شد و ابو با حرف پس تمام موربها با حرکت اعراب نفشن بعضی با حرکت بعض و بعضی با بعض حرف اینجا میخونیم که کدوم یک از این انواع با حرکت اعراب میشود و کدام یک با حرف قصد اول اونی که با حرکت اعراب میشه فالذی یعرمو بالحرکاتی اربعت و اشیاء اونی که با حرکات اعراب میشه حرکت زمنه، فتحه، کسره و سکون اینا رو حرکات اونی که با حرکات اعراب میشه اربعت و اشیاء چار چیز هستند الاسم المفرد، یک اسم مفرد و جمع تکسیر دو جمع مکسر وجمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وفعل مضارع بآخر شيء نتصيده باشد این چارتا با حرکت ائرام میشن و كل ها و هر ائمه اینها مفرد اسم مفرد جمع مكسر جمع مؤنث سالم و فعل مضارع لو اخر شيء نتصيده باشن تو رفعو مرفوع میشن به زمتی بازمه مانند یعنی سرو علی یون و ریجالون و مسلماتون یعنی سرو فلم داره به آخر چیزی نشست سوزه با چی مرفو شد بازمه یعنی سرو علیون علی یون علی با چی مرفو و مسلماتون بازمه. با و و رجاله جمع مکسر پس هر چار با چه مرفوش پس میگه و کلها به بالزمه همه اینا بازمه مرفوشن و انتون سابو بالفتحة و منصوب میشون با باچی با فتحه ماننده لن يصافر زيد و مثال لن أضرب زيدا و رجالا و مسلماتن که اینو بعدا استثنان میکنه که جب معلنس هربا منصوب شد باشی با میشه؟ خلاصه ولی با حرکت ایرام میشه پس میگه همه اینا دازمه مرکوم میشن درست بسار شده دیم و تو بو بالفتحه و با فتحه میشن میشهان؟ منصوب و تخفه بو بالکسره و با کسره مجرور میشوند و توجزمه بسکون و با ساکن مجزوم میشن مانند لم یا و ولی افتسنا میاره چرا؟ چون از میان این چهار کلمه ما گفتیم که جمع محلس سالم هر چهار تایی که در حالت وقت با زمه در حالت نست مفرد و جمع مکسر و فعل مزاری که به آخرش چیزی با فتح میشن اما جمع محلس با کسر منصول میشه لذا استثناء میکنه و خارج عن ذلك دلیل که سه میگه سه چیز خارج میشه اول به شکل کلی گفته بود همه اینا بازهم مرکوم میشن با فتح منصوب میشن با کسر مجرور میشن و با ساکن مجبور میشه میشون. ولی الان میخواد که بگه سه کلمه خارج میشن ای از این قانون کلی جمع مؤنث سالم یا رسوب بلکسره جمع موانا السالم با كسره منصول مشه معنان در والاسم الذي لا ينصرف يخفب بالفتحة اسم غير منصرف با فتحة مجرور مشه معنان مررت بعمره والفعل المضارع المعتل الآخري يجزم بحث آخر وفعل مضارع معتل الآخير با حس آخرش مجزوم میشه مانند لم یدعو بازن به يدعو مجزوم, میشه. مجزوم میشه لم یدعو پس خیلی زیبا گفته بود گفته بود اسم مفرد جمع مکسر جمع موننس صالب و فعل مزاریک به آخرش چیزی نچسبند بازن به مرخومی شان با فتح منصوب با کسر مدرور و با سکون مجزوم بعدش یک سری استثناهاتی رو آورد که بله جمع موننس در حالت نفر که گفته بود همهشون با فتح منصوب میشن جمع موننس رو خارج کن اگر منصوب شد بشتی بده کسر. از حالت جر که گفته بود همه با کسر مجلوب میشن این چهار کلمه گفته بود غیر منصرف رو خارج کن استثناه کن هرگاه مجلوب شد بشتی بده و فعل مزاره موتلل آخر که گفتی بود فعل مزاره که با آخرش چیزی نچستد با سکون مجزون میشه گفتی بود موتلل خارج کن هرگاه مجزون شد آخرش خصف میشه خیلی زیبا این کتاب بحث و مطرح کرده اما اونهایی که با حروف اعراب میشن، وَلَّذِي يُعْرَبُ بالحروف اَرْبَعَةُ وَنْوَا آنهایی که با حروف اعراب میشوند چارلو اند التثمیه تصمیه جاء رجولان مرخوه ولی با چی مرخوه؟ علامه طرفی چیه؟ علف، علف حرفی که با حرف اعراب میشن یک تخنیه و جمع المذکر صالب دو جمع مذکر صالح جاء مسلمون مسلمون فائل مرخو و واب با حرف اعراب شد والاسماء الاسما الخمسه اسمای خمسه جاء ابو که رئی تو ابا تو با حروف اعراب شد. چه در حالت رفت؟ نس جرد. وَلْأَفْعَالُ الْخَمْسَهُ وَچَهَارُ فِعْلَایِ خَمْسِهُ یعنی یعنسرانی خودش نام و هیه یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلی اونا که با آخرشون چیزی نچسبیده اونا خارج کرد چون اونا با حرکت اعراب میشه دو جمع معنیس رو نیا برده چ جز مغربات نیستن، جز مردی ها هستن میمونه یفعالان، تفعالان البته تفعالان سه سیغه هست هم تسمیه موننس غائب تسمیه مذکر حاضر و تسمیه موننس حاضر ولی چون تکراری یک مرتبه گفته در سرط فعل مزاره این تفعالی سه جا تکرار شده ولی ایرابش یکی دیگه یه بار آورده یا الان تفلان یا فلان تفلون تفرید پس مصنع جمع مذکر سالم اسم های خمسه افعال خمسه اینا با حروف اعراب میشن که خودش میگه اما التثنيه اما تثنيه سترفع بالالف با الف مرفوع میشه و تنصب و تخفض بالیا منصوب و مجرور میشه با یا مانند جاء رجولانی این حالت که رفشه چون اینجا مرکوه آه؟ نصر رجولانی سمع زیدانی مصنعه چون فائله مرکوه هست با چی؟ با الف. و هر ده مذسوب یا مجلوشه بایا میشه که حرف هست رأی تو رجولینی رأی تو زیدینی تو مجرور شمت نیم مرر تو بی رجوده نیم مرر تو بی زیده سلام تو علا مسلمه پس تصمیه هرد مرکو شد با میشه منصوب مجرور باید پس دومین کلمه ای اولین کلمه ای که با حرف ایرام میشه مصلح هست و اما جمع المذکر السالم دو همیشم جمع مذکر سالم میگه و اما جمع مذکر سالم فیرفع فعو با واغ مرفو میشه هرگاه مرفو شد بعدن میخوانیم که چه زمان مرفو میشون کلمات چه زمان منصوب و چه زمان مجرور و چه زمان مجزون ولی فعلا بدانیم هرگاه جمع مذکر سالم مرفوشد شد علامت رفع شوابه فیرفع بلواب مانند جا مسلمون حبر المسلمون قد افل حل مؤمنون در قرآن اومده و یون سب و یون و منصوب میشه و مجرور میشه بایه مثل جمع مثل مسلا در حالت نصف و جر هر دوتا یا منصوب و مجبور میشن. یعنی علامت نصف و جرشون یه هست مانند رأیتو المسلمینه نصرتو المسلمینه المسلمینه اینجا مفعول بهی هست و مفعول بهی جز منصوبات که خواهید خاند لذا یا گرفته در حالت جر همچنین هست باراکتو بیل مسلمین مسلمین بوسیده حرف با حرف جر با مجرور شده علامت جرش یا هست پس این دومین کلماتی که با یا با حرف ایراد می شوند جمع مذکر سالم هست و سبونیش اسم های خمسه و اما الاسماء الخمسه فترفع بالوا اما اسم های خمسه با لا مینجان مانند جاء اخو آمد برادرت و تو این بالالف و منصوب می با علف من در رعیتو اخا دیدم برادرت را اخا ایجا مکعول بهید منصوب علامت نصف علف گرفته و تو خفا بو و بایا مجروم شون مانند مررتو بی اخی پس یه جا شده اخو اخا اخی این واب و یا علامت ایرافن مثل زیدون زیدن،, زیدن زیدن زمه و فتح و کسره اولا با حرکت ایرام می اینا با حرف و اما الافعال خمسه اما افعال خمسه که چارمین 9 و آخرین نوع از اونها هستن که با حرف ایرام می شوند افعال خمسه هستن فترفعو به نون اینها با نون مرکوب می شوند یعنی هرگاه مرکوب بودن با نون ماننده یعنی علی یان، یعنی هبو زیدون یعنی هبو میگی منجا بخشش معذرت اون از اون هروزونایی ح... بود که با حرف رم میشد یعنی از زیدانی زیدانی یعنی سرانی زیدانی یعنی سرانی خب یعنی سران مرکوه. چرا مرکوه چون نه ناصیبی روش اومده و نه جازمی علامت رفع اگر گفتن چه هست میگوییم نون هست همینی که نون ثابت مانده علامت رف هست پس افعال خمسه با فطرفه به نون با نون مرخو می یعنی علامت رف اشون نون هست هر دو مرخو بودن علامت رف نون هست و تن سب و تجزم و به حسفه ها و منصوب می شوند و مجزوم می شوند با چه؟ با حصف نون افعال خمسه چه صحیح باشن چه موتل هر راه منصوب شدن یا مجزون شدن نونشون حصف میشه مانند لن زیدانی لن ین این منصوبه اینجا چون از کجا بدونیم منصوبه؟ چون عامل آمل نست لن از ناسبه ها هست زیدانی لن ین میگیم بیدیم ین منصوب علامت نصب چه هست؟ محمد حذف نون و تنصم و تجزم به حفه ها علامت رفت سبوت نونه و علامت نصب و جذب حذف نون زیدانی لم ینسرا تو زید یاری نکردند علامت جذب در ینسرا چه هست؟ چرا از زوره؟ بگیم تو لم اومده از زوازم هست علامت جذب چه هست؟ بگیم علامت جذب حصف نون هست حالا یک مطل رو مثال بزنیم یدعو... یدعوانی یدعوانی که از افعال خمسه هست بگیم زیدانی لن یدعواء زیدانی لم یدعواء که این آخری علامت جذبش هم حصف نون بود در پس اینها به همین سادگی بودند چهار کلمه داشتیم که با حرکت اعراب می و چهار تا دیگر داشتیم از هشت نوع که با حرف اعراب می شودن. اگر طلبه این درس را فهمید حقا و انصافا که سهمیه وافری از علم نحو رو کسب کرده است